ای دل چو حقیقت جهان است مجاز چندین چه خوری تو غم از این رنج دراز تن را به غذا سپار و با درد بساز که این رفت قلم ز بحرت تو ناید باز. از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده ای کو که به ما گوید راز زینهار در این سراچه از روی مجاز چیزی نگذاری که نمی باز. این چرخ که با کسی نمیگوید راز، پشته به ستم هزار محمود و عیاز، میخورد که به کس عمر دوباره ندهد، هرکس که شده از جهان نمی آید باز. ای بر همه سروران آلم فیروز، دانی که چه وقت می میبود رو هفروز روز، یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهار پنج شنبه و آدینه و شنبه شب و روز.